اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر ای کسانی که ایمان آورده اید چیزی را بر خدا و رسولش مقدم نشمرید و تقوای الهی پیش کنید که خداوند شنوا و داناست یا ایوها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهرو ولا تجهروا لهم بالقول کجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم ان تحبط اعمالكم و لا تشعرون ای کسانی که ایمان آورده صدای خود را فراتر از صدای پیام بر نکنید و در برابر او بلند سخن مگویید آنگونه که بعضی از شما در برابر بعضی بلند صدا می کنند مبادا اعمال شما نابود گردد در حالی که نمیدانید این <تصفيق> الذين الله اولائك الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم آنها که صدای خود را نزد رسول خدا کوتاه میکنند همان کسانی هستند که خداوند دلهایشان را برای تقوا خالص نموده و برای آنان آمرزش و پاداش عظیمی است. این الذين ينادونك من وراء الحجرات لا يعقلون ولی کسانی که تو را از پشت حجره ها بلند صدا میزنند بیشترشان نمیفهمند. ولو أنهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. لکان لهم والله غفور اگر آنها صبر می کردند، تا خود به سراغشان آیی برای آنان بهتر بود و خداوند آمرزنده و رحیم است يا ايها الذين ایمان ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد درباره آن تحقیق کنید مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان شوید ان رسول الله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 و بدانید رسول خدا در میان شماست هرگاه در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند به مشقت خواهید افتاد ولی خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده و آن را در دلهایتان زینت بخشیده و به عکس کفر و فسق و گناه را منفورتان قرار داده است کسانی که دارای این صفاتند هدایت یافتگانند فضلا من الله ونعمه والله علیم حکیم. و این برای شما به عنوان فضل و نعمتی از سوی خداست و خداوند دانا و حکیم است و ان طائفتان من المؤمنین قتتلوا فاصلحو بینهما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 دو گروه از مؤمنان با هم به بنزاع و جنگ پردازند آنها را آشتی دهید و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد و هرگاه بازگشت در میان آن دو به عدالت صلح برقرار سازید و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست می‌دارد انما المؤمنون اخوه فاصالحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون مؤمنان برادر یکدیگرند پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید و تقوای الهی پیشه کنید باشد که مشمول رحمت او شوید يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسا عسا أن يكون خيرا منهم ولا نساء ولا من نساء عسا أن أي يكون خير من ولا و لا تلمزو انفسکم و لا اسم الفسوق بعد لم یتب فالائک هم الظالمون ای کسانی که ایمان آورد اید نباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره کنند شاید آنها از اینها بهتر باشند و نز زنانی زنان دیگر را شاید آنان بهتر از اینان باشند و یک دیگر را مورد تقن و عیب قرار ندهید و با القاب زشت و ناپسند یک دیگر را یاد نکنید بسیار بد است که بر کسی پس از ایمان نام کفرامیز بگذارید و آنها که توبه نکنند ظالم و ستمگرند یا ایوها الذین آمنوا جتنبوا کثیرا من الظن این بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم اي ایمان آورده اید. از بسیاری از گمانها بپرهیزيد چرا که بعضی از گمانها گناه است و هرگز در کار دیگران تجسس نکنید و هیچیک از شما دیگری را غیبت نکند آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ به یقین همه شما از این امر کراحت دارید تقوای الهی پیش کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير اي hey, ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیلهها ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید اینها ملاک امتیاز نیست گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین ترین شماست خداوند دانا و آگاه هست قالت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 عربهای بادی نشین گفتند ایمان آورده ایم بگو شما ایمان نیاورده اید ولی بگویید اسلام آورده ایم اما هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید چیزی از پاداش کارهای شما را فرو گذار نمی کند خداوند آمر زنده مهربان است انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون مؤمنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده‌اند سپس هرگز شک و تردیدی به خود راه نداده و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کرده اند آنها راستگویانند گویانند قل اتعلمون الله بدینكم والله يعلم ما في السماوات والله يعلم ما في السماوات و ما في الارض والله بكل شيء علیم بگو آیا خدا را از ایمان خود با باخبر میسازید او تمام آنچه را در آسمانها و زمین است می‌داند و خداوند از همه چیز آگاه است قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِلَّهُ بل يَمُنُّوا عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَالِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ آنها بر تو منت می نهند که اسلام آورده اند بگو اسلام آوردن خود را بر من منت نگذارید بلکه خداوند بر شما منت می نهد که شما را به سوی ایمان هدایت کرده است اگر راستگو هستید. ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. خداوند غیب آسمان ها و زمین را میداند و نسبت به آنچه انجام میدهید بیناست.